اعوذ بالله من شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد به رب العالمین و صلی اللہ, اللہ و سلیدنا رسول الله و آله طیرین فاهرین المحسومین و اللہت الدائمت علا عدائه اجمعین اللهم افرم و جمعی المشردین و الحمد علا بحث دیگری که محبوم شیخم بحث اخر مزن. حضرت و که این اجمال هم مراجعه کنن با عنوان قیلت صبیه ممیز بحث کردن که آیا عدل قیلت اختصاص به بالقی داره یا نه اصلا که ایشون خب خیال کردن که صبیه قیلت قیلت قیلت جایی چون سوالات این صبیه ممیز نه اصلا در این جهر در قیلت نداره که سوی باش یا نباشه. اون نقطه اساسی ذهر که اخواق ما یکنه اونی که برادر انسان باشه برادر انسان فکر پردی در این جرح نداره که در سن بلوه باشه نباشه ما اگر آنی که تفکیر دارن یادشون باشه که بخص اصول یه مناسبتی که مردم شیف در اون اینم اندر مکلم بگذر تفرد اله رو شرعیه فرعیه کلیم اونجا متعرض شدیم که ظاهر عبایت شدیم تو از احکام مال مکلف برای غیر داریم مخصوصا در شیعه که چون سه تا امام داریم در این سل به امامت رسیدن اختصاص اینها به و مسئله عبادات سبیده و آثاری که در بنده حتی مسائل مالی رو در سبی ثابت میدونند کنن مثل زکاق و خلص این ها باید بهت و شهیدن به از این مراقب مجموعه کتابا دنباق سبیان گرم کردن و هر حال این ساله ها باید در در سال 20 سال ما این مسئله کدیم که انصافاً گرم کردن قضیه اینه که اینه که اینه که در موردها شد، چیزی که ثبوت شورا نیست، این لکیفی داره در مسائل سبیان و این که خیال این احکام این یگین یگین و ظن شکی تلفون فرهمیادم، اختصاص پیدا بکنه به خصوص بالغین مکلفین از که نفهم دیم نفهمیدیم شیخ چرا این خواب را انجام داده؟ یه در تو های های ما در اینو شیخمون ماند مردگی کارگر ماند یک خاصی رو داری شیخان مدرسه کالا دو یا مکو که همه این کالا دارن. که دیگه برات شیخ چرا؟ از خرمین اگر از آن مرحوم محمد در مفاتیح داره می که مفاتیح شده نه چون چه جور؟ در داره اونجا داره که برنامه فقیه در برنامه که اونجا فقیه نه شیخ قدسان دارم سه عوض فرموندر تبدیل به مکلف کردن خمیش داری هم داری و توضیح ها داشته دیدن بوده بعد از مرموم شیخ مثلا مرموم نایمی اصوار داره که این وقتون هم مکلف اصوار داره تو و مرموم آقاویی ها اصوار داره که این حب شامل آمی هم میشه هم مشهر برای مکلف برای مکلف صحیحش مشهره و سایان از کلمه یک ذهنیتی در میان حسولین ما آمد در مورد اخباری ها حسولین چون گفتودن ایف از هر رای حاصل بشون رجل همه از این حسولی ها اخباری ها مخواستا اگر نه در باب اعتباس قانونی در شریعت مقدسه محدودی که از اسواق معین باشه مثلا اگر دیاس ایفیداروشون کنیت نداره؟ این موقع شما این عبارت مرمون مفاتی و قبلد مفاتی و بعد مفاتی مرمون شیخ بریس انساری اینا بیشتر رو اون دارم اگر برای طبیل این به خود پیگاه دار رو از خیاضی دارم از این میشه این این حوالیت چون از محصه اساسی من کاریو باید اخنام این رو دارم و اینجا ما توزید هم با افرادی ها و با آن مصوری آسمن و شیف مانعی نداری در مرحبه فرسیوز شاره محدودیت ایجار بکنه این اصلا بارداری رو اصلا هم آنگوزان شاید ما روانی همه روانی که از آنگوزانی درستی یه دولت تشکل باشید به دیانگوزانی درستی به تنجیز قابل تصرف شارع هست قابل تصرف مغنن هست این طور نیست که تنجیز قابل تصرف نماشه بله تنجیز به لحاظ صغرا اونم متعارف این هست که شارع درش دفعه کنیست این هست این هم عقیقی نیست که آقا فیال کردم چی رو اقلا بزن جاییه اصلا این خاص آب از یا خوب آمین گذار در این جهاز دخالت نمیتونه چون یک عرض عریضی دارد که حبره و مکلف مخواد بره نام بخره این نام بخره یا نخره میخواد مثلا پارچه بخره این متعارف نیست دقیق بکنیم سیره و قواله اونها عقلی نه آمین شاید که اقلیه ما از خیلی تنجه گاهی بلاهاز کبراز مثلا خرب نجسه گاهی بلاهاز صغرا این مایه خربه اون تنزدی که بلاید از صغراست شارع درش تصرف نمی کنه این هست قانون گذار توی صغرایات تصرف نمی کنه اما توی کبرایات ممکنه نه این که ما خواهدونه حتما ممکنه تصرف نمی کنه بگه شما هوک اینو که از راه فلان راه باشه بو اونو هوک عمل بکنیم خیلی از اون باشه نمی شه من می شه بگه نه نمی شه هوک یعنی این ها صغرا و شما این جومدار keynan سهران بحیٹر ای که سونن oven یک شواره میگه در سهران بحلن میکنن شما از هر بای این پیدا کرده از قیّات پیدا کرده از تهسان پیدا کرده؟ از هر بای ای ای بایي این نقطه مهمه religion Allaha Muhammad Amil assolog این یه حمینه بگه نه میکنه ما از خیال این دارید که قانونی اینطور نیست که مرحله تنجس تماما در اختیار فرد باشه ممکن است قانون هم دخالت بکنه یا مثلا چی عرن مثلا اینطور نیست که مرحله تنجس تنجس در اصطلاح اصولی مرحله است که مکلف با حکم رابطه برقرار این اشعار تعجیل یه مرحله جلب شاره یه مرحله ابلاغ رسول اینا وظیفه شاره یه مرحله که مکلف با هو ارتباط پیدا می‌کنه اسمش این نحوه ارتباطی که تو با ارتباع ذمیر تعییر علم اجماعی علم تحصیلی از کتاب اسس اعتقاد به ایمان این, این رابطه‌ای رو که مکلف پیدا میکنه با اینم هر چیزی که لازم هست. خاطر اینه که باشه. هر سره روزگاری هست. دو. نکرد هم وقت اما میچوره چه تصرف بکنه. هر سره اینه. چهگه نمی‌تونه تناقض رو زمون کردی. تناقض لازم میاد چه این از تلافی. وقتی چه کرد. بله. نیست کسان رو نگه اون شوروه اولادی داره، اون رو اما اگر آدمان کوچولوییه، اینا از سعی کنند کوچولویی مفاسیم هست در اون اگر دیاز نفصی که باید تفسیر احلو بگیم این خلاصی همون مولا خلاصی هرها مولای این برگیم برد. اینا از هر راهی مشهتونه تجمه شباره بکنه ایو برای کافه ایشون نه؟ از, از, از کتاب و سنت بشهر که هر دو از تفسیر احلو بیت. هم کتاب و هم سنت هر دوش هم تفسیر احلو بیت. اگر از راه تفسیر احلو بگیم نواشه اصلا این قانونی نیمونید نمیتونه قانون بزارت اگر تا علمت حکم این اینه نمیتونه بگیر اینه نمیتونه بگیر ما رو که میتونه ما عقیدون که هم در صغران میتونه اگر هم در کبرا مشکل نداره صغران هم انکر این موارد جزئی بطه مثلا بسواسی به بسواسی میتونه نجس این پاک در اربدا لا عبرت به این تو این داری. داری. داری. داری، این تاپیوک این داری، این داری میکنی. اگر بسیاری اول به تاها در نگاشت باشند، اگر بسیاری اول به تاها در نگاشت باشند، در نگاشتش در تاها، اگر این فیلودکی یه جوره منجزاته، علاوه مسکوبه مثل که این به تاها چیه؟ علاوه حالا ما در اونجا انجام کردیم تو مرحله تناجوز. شارع میتونه تصرف بکنه لیکن متعارف اینه توی سغریات تصرف نمیکنه، متعارف اینه تو کبریات هم میتوانه تصرف بکنه اگر تصرف نکرد برمیگرده به علم غرفی. این قبوله اگر تصرف نکرد وقت ایشون بخواد دیگه اخوانه. که بله ما روایات داریم که حتی شما خود به قرآن مراجعه با مراجعه و سند و قرآن چیزی در نمارد این مطلب درست نیست اطلاعش اجمالش باید جاش خوبیه اطلاعش درست اون هم باید از راه اهل بیت باشه هم قرآنش و هم سنتش اگر مراج مصوری با این کلمه قرآن اصلا بگوشن اطلاعات اتفاق اطلاعات حصولی نیست اینکه اطلاعات لفت این چنده که ای همشون قابل قبول میشون. احلالله هلبه اطلاق و اصولی نیست اطلاق لفظی هست اهل هلبه شون اما این که چرا چون مطلق رو ارز کردیم قاعدتون آمنه زور بد لعجلش رجوع علیها موارد شک این نقطه هست دوش احلالله هلبه به این تعد نازل نشده که یک قاعده آمنه به شما در هر بیگه شک کردیم به این رجوع کنیم این احلالله هالبی در مقابل حرم ربا جاهلین میگفتن فرقی بین بی و ربا نیست آلو انمالبی با مثل ربا و احلالله هالبی و, و حرم ربا مخیم این آیه اطلاق نداره این ناظر دیگه اینه که بی غیر از با حلال و اون حرامه نه اینکه که قاعدتون کلیه یور جاهله ها اندشت در حدود این نقطه اگر ما مطلق وصولی آن اصولی رو این جاهلی همه لوحانی کوچیک است. حالا چرا که شما مسکن کردند؟ زهروت است. که ونیار تیاره نیست. وقت باطلیه نیست، دو تا سر بزنیم که حالا که ما از ون کاری نشیم برای این وسوخ خودمون سوال در مطلب ما افکامی رو جبر اینی که مردم شرکت کنند، یعنی مردم هر دویش می‌زنند سران. اون اگر واشه فقیه تازه اون هم هم چون اون معنی عباردی است که فقیه از هر راقی پیدا کرد بجرد اون هم که اصلا از کردیم طرح مسائل قانونی عذابیه حالات ادراکی و خیلی علمی نیست خوب درد بکنم چند تا شد؟ شده هیچی این دوره شرکت و بازدهی اینطور عامل است. ایشون الان بخواهید و ما اینطور نمی‌دونیم که اون دیگه ورود بحثه. دقیق بحث رو به حالات ادراکی شخص قرار داریم این چیزی علمی پیدا نمی‌کنه. این فقط تمام چیزی که ما گفتیم که سامبو شده اینا سوال از اون مرحله فعیدیت که مرحله ابلاغ میشه ما یعطا در مرحله ابلاغ ما یعطا در جنفان اجوز شر یعنی این می کره. از این رو از این زاویه اما بیایم ام این حالات ادراکی شخص که علم است و که است و شکل است بگیم زن مرحله به علم است و غیر مرحله مرحله اصلا قیلی نکتهی نیست یعنی ما بیایم یک دوری حقوق رو و قانون بر اثر بر انکسام ادراتی شخص داره. این چیزی که جامعه حقوقی با بازمون رایی که ما گفتیم که این جامعه بیشتره این را راستی بدنه حالان که به ما این که ارورد تیجا شده از شده. این مثلا درده احکام صدی خواهده حتی خوده 19 سدی هم شده چه اشتاد داره البته از کردیم ما در عباداتمون اون چی که داریم بحث معروفی از که آیا بانستری تمرینیست یا شرعیست و سباق داره مشکور بین علماء قدیم و علماء فعلیم همون شرعی دیدن شرعی درست بسیدن که ازیاد پاس تمرینی به تمرینی قطعاً این غرگه مشهوره از قدما هم داریم مسائلی هم به اینجای نوشه شده در اثبات تمرینی بودن عبادت سبیه این اینسان هستیم و اگر کنابشه بله سرکردیم کراه هم نداریم یک دانه عبادت سریم؟ اما حمیده چه. شرط میدیم نمیده به فرقه فرقه خانم یه بچی احساله داشت به نمبر حال فرقه فرقه قال نم ولکی اعتبار ایست که حج از بیر ممیل هم ثواب داره چه یک سال شش ماه و از این بوده ایش بده احتمالا داره در دور مشاهد باشه و من راسته این شخص ببادر در دور کهبه بشه بالا بچه نباشه سوی باشه نباشه باشه نه این خود که پاچه نو نهرم ایمانا دارن اینو همینکه تو عرفات همینکه بیا تو مشکر همینکه بیا تو منا خود این آن راست، آن راست، آن راست، آن راست. زاهرش این کن خدا فکر یه ایمانه اکتر به استثنائه حتما این چی نستم که غیر بماییز را شامل بشه و لذا در اونجا هم بنای آقایات است هست که حج به بگن در حج صبیه اومیز حج صبیه اونجا حج به یا حجهو دست اسمای حج بدی عبادات در حق سبی ثابت حق سبی و درمان هم دوشتی از تو می آمداری اکران اینجا به آن موسیقی بسن در که کنسن به عمال سبی واجبی یالا احتسابی بیشن که احتیاط عدم مال در اینجا احتیاط در اینجا ما در در در می ریژار اصلرا که معرووز تا مجموع که سببی ممل چند دا ی و تو اطلااقاتبلاییت هم بعضمان بعدا شاابتش میشه. بعد از اینکه ثابت که سبیه هم احکام دین داره ان کاف دینه که دار علی مولاکه است و روایت معروف ذکر فرخاخ میاس 900 سنه که او توای این روایت ها نه نه نه نه از نه نه برشن زبانه در اجومه امتراف زده میبینی در این تیز امر ندارم من توضیح میدم ما این مطلب رو در روایات دیگری در عباق و حدود داریم اینجا برداریم اینجا روالت نداریم در صبیه مای داریم قیبت شدیست چونگیتر همون چون همه ما رفتی به تربیمی ندارده بله شما چریین که عدللی اون حدیثسه چه مبلدار بر میدارره؟ او سرقیبت میکنه اون به خاطر اینکه روفرنامتی گفتن اصل مشروریت رو برمیداره. او به اندیسه روآومتی ا سر روشن نداره که با این کارو بود. همه جای به ماکان اون رووارد مروط سریانکان بسیار قوی تر از تا روبت روفرنومتی مردم بعدا روفرآومتی کردهه نهذا هم مواافه هستن سر که به مسئ جمع نداره. اون ناظر به مسئله احکام جزایی که موضوعش اسیان را تنخلجه ولی زمان رو هم برد نمیذاره زمان را استحباب هم بر نمیذاره حالا ما تو اون بحث باید دارم تو طولانی یا در بحث رو قلم انصطبی پنج شیش تا احتمال زرکه شیش تا احتمال که در کتاب دیگه هم نمید توضیحاتش هم کردیم به ذهن ما میاد مراد بقول آن قلم یا المعاخذه تح ما به جایی گفتیم احکام جزایی که موضوعش عنوان تمرد و اسیان بر قانونه. اینا برگشته میشه، دیگه برگشته نمیشه. تازه تا حدیث صاحب نیست. من یه مشکلی به عرض کردم چون نگفتن اینا من توضیح داد ما گهید باید در که یک حدیث روش شما رو بلد میگه که یک حدیث معناش اگه مشکل بشه برای ما مراجعه, مراجعه کنیم به شواهد این که روح القلم عن سبید شواهدش رو مراجعه کنیم تا که من برگشتم به این کتب به اصطلاح معاجم اینا معاجم لغوی معاجمی که مثل معاجم بحاره من من تا حدیث بیشتر نمیم یه رفعه قلمان انستهویه یه رفعه انامان انستهویه سال که هر دوتا محل کلامی که این رفعه نشیم این تا بیشتر شاهد نداریم شما ما محل احادی سجی داشته باشیم که با اون احادی مجلی داره هرزوش مشکل دارم و هرزار نزیب بدارم یکی مصیبتی یکی هر بشه بابده هر که به مکان بحث کردیم در کتابه احکام آمدی که از اهل سنته ادام میکنه واضحه میگه این ای مجمل نیست این مبینه رفت از اممتی پلان واضحه که مراد معاخذه است. یعنی همون عقوبت بزن انا که به مکان ترفیه نیگه بحثایی که اطراف که اسرم که چنین که درست اخا ذکر اخا میکنه و که یک رحل و سنه نیست صرفا چه کوچکی ماست دروش بدید بفهمان صد سبیه اون حالت انفعال و کراهت رو نداره بنازا شواهد معیبی نیست که شامل اون بشه این یک بحث که خب بحث خدا ریبه ما میتونیم اینو توسعه بدیم حالا به جایی وقت تو بحث قیقت کنم همون اوستاد ندارن کشه من نداره ما در کتاب حدود ای داریم در روالیات آمده لا حد لمن لا حد علی عنوان اینه لا حد لمن لا حد علی لام و الان در اینجور یعنی و اونجا آمده امام حرومه اگر کسی باشه اشاره، حدی رو به ذره رو جهن نکرده اون حد رو در جایی هم که به نفعه او جهن نمیده تناسر تصانخ قانونی اون سنفیت قانونی من این رو که از اصول و مقداری هم قرار بگیم چون من حض کردم حض در غایات ما در برزار حض که لحظه هم حض در عبارات ما اون هم باتن就是 حقوق قرارداد شده زاد بر که میاد ان هر اختلافی در تفسیرش بین فقهای ما مثلا فقهای متأخر ما مثلا نائینی هر, هر دو یک درجه ظریف از ملک میتونه آی میگن هر باهو فرقی نمیکنه هر دو فقط هر دو تشریع الهی هستند تشریع هستن. نه از از آثارش با هم دیگه فرق این بحث هر کدوم من واضحه ان ان شاء الله خدا طول اول مکاسه بیرسیدی بسته هفت و هفت هم به حکم اونجا مفره بگم و آنون متعاشکره شیعه خوب زحمتی شیدن مصطبع که دوهای متعاشی میرونی شنون دیدن مویدن های پاسه باشم دیگن من نموان به روزون که این کتاب باسته تقیی خیلی زحمات و از منونت ما چند یادهایی که از سال این شاید وقتی توضیح دادی میشه ما از کردیم که نیز این تفسیری که الان به تو رمزنده ترجمه کردی راجع به حق میشه ولی کتاب عبدالله زاده انگلیسی میکنه. الحق ماجور شخص. از این لسانه شخص. نمیخوام بذار بذار بذار بذار بذار بذار به بذار بذار بذار بذار بذار بذار بذار بذار در اختیار شما قرار داده شد یک حکم از بالا اعتباری است از بالا که شده و در ذمه شما قرار داده شده و مشهور انجام چون بزرگی که در بین علمای ما مشهور که حتا طبیعتاً قابل اسقاط حکم تابع قاابل اسقاط نیست و این تعصیر که میگن حرف پیشنگی در میان چون جدل صاحب شرف اینقدر است نمی‌خواد نیست اخانب این گفته که خاطر بدی مشهور یعنی ذره این حکمین و در این روایت در این روایت لا حد لمن لا حد علیه یعنی اگر کسی بود که حد علیه نداشت همین شخص حد لهم نداره این روی عمل عمل مبوری قراری در این روی یعنی یعنی اگر برای فردی گفتن که مثلا تو چنین کار رو انجام بدی مثلا کاری که رابطه باقی داره این برای تو تو حق نمی کنه یا مثلا دکتری نمی اگر برای او نبود علیه او نبود لحبه او هم نخواهد شد هر دو با هم مقایسه میشه. مثلا اینو در کتاب در روایات ما به مناسبت حد قدر گفتن. اگر یه دیوانه یه کسی گفت برادزنام دست جو بگم. خب حد در جاری نمیشه. چون دیوان است دیگه، خود نظره حساب. بعد کسی گفت برادزنام میگم خب حد در جاری نمیشه، غزل زره. ولی حرفش. اگه کسی به دیوانه گفت برادزنام خب بهتره. اگر کسی به دیوانه گفت برادزنام اونم برای حجاره نمیشه چون نه این لا حد لمن لا حد علیه یعنی که انما یک خیلیت و توابطی در اینجا است. و اون نقطش اینه که اگر این شخص خودش این عمل انجام داد تولید حق نمیکنه. اگر اگر خدای نکرده دست کرد یک شخصی رو حدی بر اون شخص نمیاد به شخص دیگم تو حد مطالبه کن که این رو حد قضی کاری کنن چون برای اون تولید حق علی رو نمی کنه تولید حق لحش هم نمی کنه فرم نمی کنه این اصور فر... روشن شد قاله لا حده من لا حد علیه وقتی این رو به ما نهنفی هم بناهن بر اینکه که غیبت نو حد، حق یعنی نو حج پیدا میشه. نظام مثلا اگه دیوانه دیوانه شخصی کنه، کن. تا اثرین دیوانه که اثر نداره، بچه کوچیکی صفتی رو گفت غیر هوایی، ما نمی‌فهمیم چی، یاد دادن، بازش گفتی خدمت، دیوانه دولت، خودش هم نمی‌فهمیم چی. حالا این برای اون مشکل داره هر عمر نخ نروه، که مشکلی برام نذاره. اگر برای این درست نکرد، عکسش هم همینطور. او قانون لاحدت این مطلب رو آن کوی آخر مثلا گفتون. موندا که تا بودن نرسوند یه اشاره‌ای کردن که اگه کسی دیوانه رو ریبافت کرد حرام نیست. به اصطلاح اگه دیوانه ریبافت از انسان حرام نیست چون تکلیف نظریه انسان هم بخواهد دیوانه رو ریبافت بکنه اون هم حرام نیست. اما ببین شو، خاص دیواده تا بوده. sabia eram uma esposa. حتی در مانحنشی رو باعث نباید اشتباه نشه، आवाज اگر اون به بایدی در باقر قبول بکنی، اونو به عنوان یک اصل اغلایی قبول بکنیم, قبول بکنیم. و و دلوقع. دلوقع. چرا مشکلش نه به لحاظ به حساب حرمتشون تکلیف نداره اما به لحاظ مقبوضیت چرا زاده خب پرمان اما حرمت هست درست وقتی از این از این, این... اه... پرسومون باید در باقر حق بعدم اندم باید ثابت باشه که قیبت و علیه خیلی مشکلش اینه اینشالله این دنسته توی مسئله کفارات قیبت اونجا متعرض میشین چون یکی از بحثایی که از که آیا قیبت فقط مجرد حکم یا حد هم داره اون دعای بوده دوشند و اینها از اون استفاده شده که قیبت نوع حده. حده یعنی اگر شما ولی را چیزی در زمه شما میاد باز بگیدیم به اون طرف بگیدیم راضی بیشه تا بکنه. این اینشاله عرض می کنیم و اینشاله عرض می کنیم انصافا ثابت نیست این محلی اینشاله عرض می که این مطلب که هی برد مثل برد یه نوع به اصحا حقه این طور نیست که باید صرف حقه ماشیم عرض کردن میشه استیناسی پیدا کرد ولی اون حدیث در ما به حقه لا حد دل من لا حد دلیم بگیم همچنان که صدیه غیر ممیز هیچ اعتباری به کلامش نیست هیچ درجه از مبغوضیت در کلامش نمیاد. اگر کسی هم سبیه غیر ممیز رو خیبت کرد هیچ درجه از مبغوضیت نمیان بله اگر قیبت سبیه غیر ممیز برگرده به پدر مادر اشیره او محصی دیگه اما اگر برگرده به صفحه که در خود بچه غیر ممیز هست همچنان که قیبت در حق و حرام رو بشیاد بده به این لحظ بیاره کسی دیگری هم بخواد رو قیبست بکنه اون براش بار نمیشه اونتر از هم تمستا که با اطلاق اون حدیث و, حدیث و حدوده بخوایم او رو به ما نحن و فیلم بکشیم این مستدر اینه که قیبست رو اکناه حق بدونیم نه, نه ب... یعنی کلام که هست که واقعا بلو. قیبت چرا سلمت کنم؟ اصافه یک کسی که تنها ما داره علاقه میدیم بعد مروان گوش میدن ترفییت رو اهل و ها نه ممیه؟ غیر نه اگه خود صبیه غیر ممیه این کار کرد قیبت نیست کسی هم در حق اون کرد اما میخواید از این راه بیاریم عبید اون تو اون دیگه ریس خرید شد قبول کردن نه میخواد که بگیم که دلیل نیست ما اون روایت رو هم تامین بدیم شامل ماهنفی بشه ادای عدالت انصافا اون مطلب یه مقدار مطلب اوغلا نیست اما تامینش برای ماهنفی خیلی اج مشکل می این راجب بحث اون رو غلطه روایت رو استفاده به لا حد دل من با دا هم درد میکنم این سریع روایت مثل روایتون حساری درداره یعنی روایتون چند تا روایتون مرمون شیخ انصاری بعد از بیان این روایتی که ما دین متعرض کلامشون اینجوری گذن دقیق کلامی امور دین عنوان امر اول رو در تعریف غیبت اختصاص کنن خب متعرض،, متعرض تعریف غیبت شدن ما یه توضیحی رو سابقاً عرض کردیم ما اینجا من یه مقدار کلماتش رو بخونم چون وقت ندیسم بعد اون توضیح رو ارایه می‌کنم گفته شده که سندرا اکنون شده بعد که در باب موضوع خیبر هم روایت وارد شده و در کتب به اصطلاح لغوی هم بعد‌ها غیر از روایات ما یک تفاسیری برای بله برای دیوان آمده مثلا اینجا آی خویی در این صفحه 324 از مصباح المنیر پیامین را کرده اند ابتدا او ادا ذکر او به ما یکره او من العیوب و احد این باب استفاله و اسم اسمال اسم المصدر اسم سبحان اسم المصدر ولی اسما الرید خونه غیبت مصدر قیبت و مصدر قابع هست غیبت مصدر اقتابه است، نه مصدر قابع حالا یه حاله باشه تعریف دیگری ایشان از کتاب لسان العرب نهار کردن انتتکل خلف انسان مستور به سو او به ما یقم و حول و ناراحت میشه اگر بشنوه این مطلب رو پس یکی از این دوتا باشه یا به سوئن باشه اولا انسان مستور باید باشه سوئ باشه یا اگر سوئن نبود یا ما قهون این به تفسیر دیگه در کتاب لسان العرب آمده تفسیر دیگری اثبات در لسان العرب از ابن العربی نقل کرده نمیشه تاجر عبیس هم داره نمیشه تاجر عبیس هم داره تاجر عبیس موزی اکراما عرب داره و این هم که ایشون داره ناغذه غاب ادار نکره انسانن به خیر اوشه هم درسته از این عبارت ابن العربی که این باب این معنا معنای خود این فعله این طور نیست که باید به باقش افتعال داره هی ادار این معنا تقصیم قابه به طور تنبیری فعل نازه نه قابه به طور تنبیری فعل نازه نه و همچنان قیبت یا قابه در اصل وقت به معنی است که در چشم دیگه نمیشه در روح نیست. مقابل شیزیست اینو استراحه هم قیبت نیم یعنیم رو به خیلی و در کتاب لسانه را عرب کرده از وردی مساده که خود غیب در اصل به معنای اون چرویست که رو کلیه هیوانه به کلیهش برای اینکه پاید هیوان چاقیانه با اون چروی داره کلیه که بعد از کشن میفرمون اگر این معنا در حسابه شد در این در نیست این معنای شد این در حسابه معنای محسوس بوده بعد تصرف شده این معنای معقول. چون از کردیم مخصوصا در لغت عرب این هست که الفاظ افتداعا برای معانی محسوسه بودن بعد برای معانی معبوله مثلا هر رو نگر از اقوال شطور شون اقوال شطور میکرد که شطور تکان نباید این انصافت شواهدش فراغانه و همین شواهده اگر این نقل اگر این نقل درست باشه در این تیزه مثلای اصلیش این بوده اصلا حیوان رو می کشتم مثلا دور بر کدیش چربی گرفتیم این چار بوده این چربی برداره اون رو بیدید بسه. بعد به برسه شده در هر چیزی که در مقابل چشم انسان نباشه بعد به برسه شده در نور محنوی نیست اخلاقیه نیست ایمان به خدا خود خدا, خدا, خدا دو تا رو باید داره محوم شیف در کتاب کمال و دین الگین یومونو برگیبه این برگیبه ایمان محنوی این برگیبه داره از و و ما درباره دقیقش از مولانا شیراز همون این مولا که معنای شیراز در چون که من می‌دارم یه گزار کردم ما هست در این کمال دین قوم شیخ طوسی که برایاً تفسیر شده پس این که ما کلمه وی رو در یک معنای واسع به کار برد تا ویونه از تحت اصل لغویش اون بوده به و این عبارت وا به جزاک ده غالب تا به اعتبار و بحث لغوی که آیا معانی به حسب هیئات متصلاً تحول اون چیزی که خودش طاهره. اما چیزی که ظاهر رو تغییر میده این آیا میشه که حیات ماده رو کم و زیاد بکنه اصلا ماده معنای ما... ماده عوض بشه این این, این عبارت عبارت به دورعربی اگر دورعربی باشه عربی آب شدن آب شد به معنای به او بخير او این بوده که کلمه خیر و اید و اختابه چون در قرآن استعمال باب اختعاله بلا یختتر برزه خوبه هست در روایات ما هم بلا یختتر بلا یختتر اینجوری آمده از این عبارات که از این معلوم میشه که بیشون که از عرض شنیده اصلا غابه رو شنیده دیگه و از این عبارات هم معلوم میشه که خود غیبت همین سلاتی مجرد گرفته شده ما الان غیبت رو اغتیاب از خلافی مصدیت اضافیم اسم مصدر اقتیابه اقتیاب مصدر ایست اسم مصدرش غیبته لکه اگر عبارت عربی از عرب شنیده آب پلانه وقت معلوم میشه که در غابه فقط این عنوان بوده که طرف حاضر نباشه کلام شما خیر باشه یا شر باشه. بوده بسنا کلام شما خیر باشه یا شر باشه. ارازه کرد انسانم به خیر او و این عبارت تتمه نداره آقای خوی نهاره کردن شاید آقای خوی مثلا جواهر گفتن اونان اهاره کردن ولغیبت و فعلتون سوا امکانت محمودتن او قبیهتن این تتمه عبارت فقیه نهاره کردن در لسان العرار از ابن العرابی از ابن العرابی این طور برمشه که غابه به معنای سلاسیه در سلاسیه مجردش لازم نیست قاب زیدون قاب زیدن هم درسته و اون معناش این از که پشت سر او وقتی قائبه انسان کلامی رو به کار بره توشم نخوابیده شر باشه خیرم باشه مهم کلام نیست که در غیبت شخص گفته میشه بگیم میگن قابه این کلامی که ابن عربی داره دقت دقیق من بعد برمی گرم توضیح این کلمات رو اصلا فیلم بخونید. بخونیم و در مقابل اینها اون حدیثیست که از پیغمبر داره من در بحثی که از دور منصور خوندم یاد آقایم باشم باشه ارز کردیم یه مقداری تو دور منصورم اون در زید آیه ولایختر بعضا کن بعضا که پیغمبر رو ذکر که اخاف یک یکتر احول و سمن این محل بحث شده که آیا این تفسیر رو کنید هم بر فرمودن به احضامش قبول بکنید به احضامش قبول نکنید چیزی که هم کنید به این تفسیرهای های که رو نهره شده حالا انشاءالت باید صلی اللہ علیه محمد